ای در رخ تو پیدا انوار پادشاهی در فکرت تو پنهان صد حکمت الهی کلکه تو بارک الله بر ملک و دین گشاده صد چشم آب حیوان از ای سیاهی بر احرمن نتابد انوار اسم عظم ملکان توست و خاتم فرمای هرچه خواهی در حشمت سلیمان هر کس که شک نماید بر عقل و دانش او خندند مرغ و ماهی باز ارچه گاه گاهی بر سرنهد کلاهی مرغان غاف دانند آین پادشاهی تیری که آسمانش از فیض خود دهد آب تنها جهان بگیرد بیمنت سپاهی کل که تو خوش نویسد در شعن یار و اغیار تعویز ابسون افسون امرکایی ای انصر تو مخلوق از کبریای عزت وی دولت تو ایمن از صدمه تباهی ایمن گر پر تویز بر برکان و معدن افتد یا سرخ رو را بخشند رنگ کاهی عمریست پادشاه ها کزمه تویست جامم اینک ز بنده دعوی و از محتسب گواهی دانم دلت ببخشد بر عجز شپنشینان گر حال من بپرسی از باد سووگائی ساغی بیار آبی از چشمه خرابات تا خرقه ها بشویم از عجب خانقاهی جایی که برق اصیان بر آدم زد ما را چگونه زیبد دعوی بیگناهی حافظ چپاد شاهد گهگاه میبرد نام رنجش زبخت, رنجش زبخت من ما بازا به این تو نیست ارز کنم که من ده بار ست بار این گفتم این غزل به نظر مال اشاره به شاه شجایه باز یکی دیگه گفتم این غزل اشاره به شاه شجایه باز یکی دیگه همین کنم و ممکن است گاهی دوستان پک کنن که ما که اون شاه دیگه شاه نبودن چطوریه که این همه غزل در دیوان خاجه اشاره به شاه شجاعه جواب این است که اگر دوران شاعری خاجه رو کم و بیش پنجاه سال بگیریم 26 و سالش یعنی نصف بیشترش در دوران پادشایی شاهشو جاید از 760 تا 786 پادشاید دوم این که روابط خیلی خوب داشتن شاه جاو هم، حاجب با هم دوستی داشتن البته در این 26 سال، یکی دو سال شاه محمود برادرش میاد و مردم شیرازم که خورشید دل زیر دلشون زده بوده فورسش شاه شجاع رو بیرون میکنن و میره و برمیگرده حالا من تاریخ نمیخوام بگم برجهت 26 سال بعد 5 سال دوران فرمولروايي مبارزتی محمد مظفریه که حاجی ریختش نمیخواسته نمیخاست ببینه و اسمشو اصلا نبرده هر وقت هم می‌خواست حرف بزنه ازش از اش مح... می‌کفتم محتسب اش و جز تیرهای جانسوز حجب و قوت آقیه <تصفيق> که در میکده‌ها خوبش آقیه‌ان گیره از پاق قروب بسته‌ی ما خوبشاید ما یه دوره‌ی مبارزه دید. و چند تا غذاب دیگه است که در اون دوره دست و دل حافظم به شاعری نمیرفته این خودش میشه سی سال بعد یه قسمت کوچکی که از اول دوره جوانی حاجم در دوران شاه شیخ ابو بوده که جوان بوده و بلند پرواز بوده و دنبال زنده کردن، مفاقر ایران باستان بوده بود. داستان ها داشته و او رو هم همین مبارزه دین محمد ناجنس میگیره و بعد هم با سالوسی تمام به جایی که خودش ساخت بده بکشنش میگه که ولی این آقا دستور رو در بچه هایی فلان سید رو یا فلان کسک رو کشتن میده دست اونا که اونا به قصاص جرم شیخ هبایسه ها بکشن. بعد از دورش شاه شجاع جنگ های متوالی بین بچه های مبارزدین و دیگران هست و ورود تیمور و دیگه غزل های متفرقه هست غزل های به اصطلاح ای که اشاره به تیمور داره، اشاره به شاه منصور داره، اشاره به شاه یعیه داره، و چیزای دیگه اینا تک تکه. اشتر حجم دیوان حافظ در دوره شاه شجاع و با روابط خوبه با شاه شجاعست بوده شد. یکم همین غذر. این غذر بزرگی هم هست چارده خط اینجا. و میگه در رخ تو پیدا انوار پادشاهی در فکرت تو پنهان صد حکمت علهی انوار پادشاهی ظاهرا اشاره است به فره ایزدی و در قدیم در ایران باستان قبل از اسلام معتقد بودند که شاه باید معیده به تعیید الهی باشه و خداوند او رو تعیید بکنه سه دسته بودن که حتما باید از طرف خدا تعیید می شدن. یکی موبدان بودن لاقل موبدان موبد رئیسشون یکی پهلوانان بودن که اینا اون فر موبدی داشته، این فر پهلوانی داشته، یکم پادشاهان که فر شاهی داشته. این فر رو در زبان قدیم بهش میگن خوره نه. در اوستا خوره نه میگن که باید شده فر در فارسی و همون لطف الهی، همون نظر تایید الهی. و همین نظر هست که بعدها به صورت نظریه الهی حکومت مشروعیت حکومت در میاد که حکومت اصلا ودیعه الهی است که نزد شخص که دردشته میشه و حتی در قانون اساسی اخیر ما بازم این ودیعه الهی رو در قانون احساسی مشروعیت هر ودیعه الهی رو گذاشته بودم همراه با تایید مردم و مردم برای اینکه عوام و اینو بفهمن این فرره رو، فرده ی ایزدی رو فرده ی غیر جسمانی دیگه تعیید، لطف الهیه که نسبت کسی باشه ولی خب آمه ای ناست و مردم عوامت نمیدونم، دهاتی و کشاورز و که درک نمی کردن چنین مهمونیه این است که این رو سعی کردن به صورت چیزهای مادی بگه مثلا میگویند که جمشی آمد و پادشاه شد و سالها هفصد سال مثلا پادشاهی کرد و چه کرد و چه کرد و بعدها به علت دروب بفتن که بویا در شاهنامه هست یا به علت تکبر کردن و دعوی خدایی کردم حرفه ایزدی به صورت مرغی به صورت مرغ شکاری مثل باز مثل در شام. سه بار از اون جدا شد یک بار این فره رفت و به گرشاست رسید دو او پهلوان شد و به اعتقاد زرداشتی ها هنوز گرشاست زنده است و در خواب، تا در آخر زمان که زحاک از بندش در دماوند میگوریزه و میناد و فساد بسیار در دنیا میکنه گرشاس از خواب بیدار میشه و زحاک رو میپشه البته یکی از دوستان اینجا در رساله دکتریش نوشته بود که فریدون زحاک رو برد در دماوند در بند کرد نو آبش نداد تا از گشنگی مرد و اونجا از گشتگی کشته بودش اما ظاهراً روایت قدیم اون که ما قدیم یافتی رو پتالا شنیدیم این است که زهای زنده است و فردید. مثل چیزی مثل دجال مثلا ایم. یک بار دیگه فره ایزدی از جمشید جدا شد به فریدون بسید که فریدون بعد از فرمون قبائی هزار ساله زهای به واسطه همون فر ایزدی آمد و زهاج و شکست و بزمده. یک بارم جدا شد و به ایزد مه خیبه بعد از اینکه که ایزدی از او جدا شد مردم از او برگشتن. در حیرت خوشی زیر پرشون زده بود. دقیقاً مثل اوافر رژیم گذشته که دیگه شاه ممنوکت هرچی میگفت اگر راست هم میگفت کسی باور نیست. اینا این مجاهدین مارسیست اسلامیان، هستند، همه بهش هر چه نمیدم هرچه میگفت، بعضی چیزار میگفت مثلا ما نکردیم، مردم باور نمید. و از او برگشتن و سرش شوند. یک چنین این است که میگه که آمدن و فردوسی به علت احساسات ملیش میگه که زهاد از دشت سواران نیزه گذار یعنی از عربیز. به هر حال بعد از جدا شدن فرره ایزاویز که سلطنت از دست جمشید رفت و یه صد سالی متواری بود تا مردان زه او را گیر آوردن و آوردنش و با عره به دونیمش کرد که چقدر شبیه این به دونیم کردنه. جمشید با اره با سرنوشت زکری به هم او رو هم میگن که با اره بوده. چه به هر. یک بار دیگه در داستان اردشیر بابکان و اردوان عین همین قضیه تکرار میشه. میگه که اردشیر عرض کنم که دختر اردوان او مهراورده بود، عاشقون شده بود. اردشیر رو اردوان اولا دوستش نداشت، دوم اینکه نگیادش شد برای خودش که این کلکی دستش نده. و گرفتاری تولید نه کنید. ولی دختره خوش بود از این و در یه روز تعطیلی که مردم هم رفته دادن به جشن و بیرون شهر و اینا دو تا عصب تیز رو درجه یک تقییه میکنه یا یک عصب یک اسب بیا و هر چی هم به وزن سواک و به قیمت سنگین بر مقداری و با هم سوار میشن و فرار مرار می‌کنند و بعد از جشن اردوان میاد بیانه جاتر بچه نیست اردشی که نیست، چی، دخترش هم نیست و به تاق میرن و اینا از راهی که فکر کردن این را با وزیرشون چند تا سوار زبده میرستم به یه خبر میگیرن که به این نام این نشون کسی ندیدیم گزن چرا یه دختر پسر دیدیم سواری اصلی بودند و یک گوچ سفیدی هم دنبال اینا می دوید در فاصله پاسده سردنشیشون می دوید. رفتن جلوتر گفتن که شما دیدین هم چیزی گفتن بله یک دفتر پیسری که سواره هست بودن با هم و می رفتن و یک گوچ سفیدی پشت پای مرکبشون حرکت رفتن جلوتر پرسیدن گفتن که بله دیدیم این سر سوار از پاینی بوش ستیدی هم پشتشون نشسته بود و از اینجا به طاقت هم دارد. چیز گفت که وزیر اردوان گفت که دیگه تحقیق اینا بی پایده است برای اینکه این فره ایزدی بود و به او پیوست و دیگه کارتو تو تمام از این است که این فره ایزدی که بوده و بعد به صورت فر و فر فارچاهی و به معنی شکو اینا اومده و توی اصطلاحات ادب فارسی خیلی به کار رفته ولی حقیقت قضیه رو کسی دقیقاً نمیدونست تا مرحوم پورداو بود در یه مقاله‌ای راجع به این فره ایزادی متق تفصیل بحث کرد و این عرایضی که بند کردم در خدمت اون بزرگمرد در دانشگاه در یاد گرفتم اینکه میگه ای درخ تو پیدا انوار پادشاهی این اشارهش به فرده ایزدیه ولو این که خاجه حافظ خودش تصفر خیلی روشنی از فرده ایزدی نداشته بشه. در فکرت تو، فنهان صد حکمت علاقیه. این هم اشاره به یه حدیثیست. یه ارباق ملهمون رؤسای دولتها الهام بهشون. الانم البته الهام میشه، ولی از سیا و از سازمانه اطلاعی دوشاره مدلف الهام بهشون میرسه، ولی میرسه به گفتن که آقای آزاری امروز میگفتن که وقتی که متخفی میخواستن هم بکنن به ایران در شهری بیست مدتی پیش امریکایی ها به رزاشا خبر داده بودن که اینا دارن وسائل پر میکنن، میخوان حمله کنن حال خبر می‌رسه این است که معمولاً هم کسی که در رأس حرم قدرت قرار داره اطلاعاتش پیش از هر مگر اینکه به دست خودش یه معمولین و یه مهره‌های رو کار بذاره که اینا ها رو لازمه بهش نگن اون رو دل اون می‌خواد بشه همین کاری که سواک ما، رجال ما در اواخر دوره چیز بودن و شاخت باور نمی کرد که دو ملیون مردم اومدن بیرون هرچی هرچی می گفتن آقا مثلا تظاهرات شد اینام گفتش نه اینا رو دادن اینا مزدور بیگانن نمیدونم دونن فلانم تا وقت که خودش با الیکوپتر رفت و دید و بعد که برگشت پرخاش کرد محموجین اطلاعاتی ایناش که چی چی می بکنین چون مانونان ولی خب دیگه دیگه بود و اون معمولین هم کسانه بودن که خودمون انتخاب کرد برای اینکه همون هر بارو بزنن که خوشش و الا چیز هست لطف تو بارک الله بر ملک و دین گشاده کلک تو برشت کلک تو بارک الله بر ملک و دین گشاده صد چشم آب حیوان از قدر ای کلک اصلا من این نگه و, اصلا و قلم هم یه نمنه یه دیگه بارک الله عدات تحسین الان هم هست و یعنی مثل ماشالله مثل الحمدلله الله یعنی برکت بکنه یا مبارک بکنه خدا کلک تو رو که این قلم تو صد چشمه آب حیوان از یک قطره سیاهی، یعنی موقفت، بر ملک باز بازگرده این که آب حیوان در ظلمته، هممون می‌دونیم یعنی گفتن که آب حیوان، چشمه حیوان تو زکار بسته، سعدی میگه، زکار بسته ما یندش و دل شکسته مدار که آب چشمه حیوان در اون طریقه و اینو قصتش یه وقتی به تفسیر گفتم الان فرصتش نیستیم که بگم این چشمه های آب گرمی که در دوران یخ بوده دو آب جونش ازشون می بیرون اگر کسی بشری، هیگونی، مرقی توی اون یخ و سرمایه مهلک به یکی از این چشمه های آب گرم رسیده، جونش خریده شده برای اونجا گرمی اون آب یه مقدار این یخ‌ها رو باز کرده بوده علف بوده، درخت بوده، چیز بوده و این می زنده بمونه. به همین دلیل این تصور در اون گخبندان ده هزار سال پیش در ذهن بچگانه فشر اون روزی این تصور رو وجود آورده که یه چشمه هایی در روی زمین هست که اگر کسی از آب اون چشمه بخوره زنده اون همیشه و اینا دران تاریکیست برای که یه قسمت زیادی از این نواهی که این چشمه آب گرم دارن طرف های پترزبورگ و شمال روسیه هستن که شبهای بسیار بسیار طولانی اصلا 20 ساعته و روزای یکی دو ساعته دارن و همیشه تایید میگم بله بله در صورت که قلم تو بر مرکودین صد چشمه آب حیوان گشاده از یک قطر سیاهی بر اهرمن نتا بد انوار اسم ازم ملکان توست و خاتم بر مال هرچه خواه تمام قصه سلیمان همه اینا رو کنیه به چیز کرده اولا یکی از نشانهای های رو بایی در اولین جایی که این گفته میشه در داستان جمشید هست در عویسی که میگه که او به جمشید یک انگشتری زرین داد و یک اصا اصا هم نشان فرمون است و پیشوایی و همین اصا رو در داستان موسا هم میبینید که شعیب اصای موجه به موسا داد و او رو پرستاد به با و هنوز هم یه چماقی جلو درباره هست سرش نقره میگه اینا این این سمبل فرمون روایی است و پیران قبائل هم این رو به همین صورت دست به دست میگرد میدن. حالا تا جمع داستان دیگه میگهش که نمیخوام بگم اونجا ولی بعدها روی انگشتر روی نگین انگشتر اسم پادشا رو میکندند و این دست پادشا بوده فرمان هایی که میخواست اجراوشه مهر کرده و این نشان موزیکره می‌بود. سلیمان هم یه همچین می‌گن که همچین انگشتری داشته که اسم عظم برش نقش بوده. اسم عظم رو هم من قبلا گفتم می‌گودن که خدا یه اسمایی داره اسم عظم که اگر کسی خدا رو به اون اسم به خانه هرچه از خدا بخواد داده می‌شوند. روا من نمیدونم خداوند چه اسمی داره یا یعنی نه به هر حال بنده بلد نیستم ولی یک مسئله ازار اجتماعی هست او این است که در اینا رو در مردم شناسی رو تفصیل بحث می‌کنن رابطه بین اسم و مصمم این چیزیست که همه ما وقتی بچه بودیم شب میگفتن اسم عقربو نیار برای خواهرت یا اگه مثلا اغرب عقربو کشته، اون کشتم با جفتش برای اینکه جفتش میاند دنباله میکنن یا اسم جن رو نیار، بگو از ما بهترون برای اینکه میان از ای اسم بردن اسم و مصما میگفتن رابطه دارن با هم و همچنین است متعلقات هر شخصی چه از وجودش مثلا موش، مثلا ناخونش بگرفته چه تا فارچه‌ایی که مثلا تنش کرده این جادوگرا هنوزم هنوز هم جادوی ها و فالگیره ها اینا که دعای سیفید وقتی و سیا وقتی میدن و زن ها هستو باید جدا کنن جا نوندن و عکسش میگن که یک که لباس چو بیار یک که در موشو بیار یا یک سر ناخونچ بیار معتقد بودن که اینا حواست جادویی دارن و پیوستگی دارن به صاحبش و بنابراین کارهایی که ارضامات که نسبت به اون می در صاحب او هم محصلیم چیزها رو همه دیدیم منطالبیست که هیلی چیز نیست یکی از اینا همینه که میگن اگر خداوند رو به اون است که اسم حریقشه بخونی خداوند جواب و در هند هنوز یه تایفهی هستن که روزی ده هزار دفته مثلا میگن هم. مم. و معتقدن که این اسم کریشنا خدا خودشونه و اگر میونه ده هزار دفعه که میگن اگر یه دفعه اینو درست و به صورت صحیح تلفز کنن این بعد مراد داده میشه این این اسم عظم از همون جا از رابطه بین اسم و مسما گرفته شده. و هر حال گفتم که روی نقش نگین سلیمان اسماعظم بوده و دیوی این نکین رو می‌دوزده و چه روز پادشایی می‌کنه قصه‌ش رو خوندید اگر نخوندید تشمیل برید به داستان سلیمان در حتاق‌های داستان‌های پیانفران اونجا ملاحظه فرمین بعدی میگه بر اهرمن نتاوت انوار اسماعظم انوار اسماعظم بر شیطون کار نمی‌کنه توجه داشته باشین که اینجا برادر شاه جا آمده بود یه دو سال بیرون کرده اینن مثل داستان بیب و سلیمان بیرون کرده شاه شاهشو جا علاخون و علاخون شده رفته مدسی در عبرگو بوده بود بعد دو رفته به کرمان و وزیر فداکار درجه یکی داشته به نام جلال الدین تورانشا. این در کمال فضاکارینا وسائلی فراهم میکنه اون شاه معمود هم ریاقت حکومت رو نگهتایی شهر اینا رو نداشته در مدت کوتاهی مردم هم میاره و شاه شجاع که آماده بوده بر و پس میگیره شهر باشه اینه که میگه که انوار اسم عظم بر اهرمن نمیتابه همونجور که اهرمن یعنی دیر سلمان هم بیش از چهل روز نتونست. و همه این که انگشت رو داشت اینا اه، پاری بکنه میگه ملک کام تست و خاتم امریکات من تست خاطم مال تست هر چه میخواد فرمیده فرمای یعنی دستور بده فرمون بده هر چه خواهی. در حشمت سلیمان هر کس که شک بر بر هر دانشو او خندن مرغما چیزی نداره که من اینجا بگم جز اینکه گفتن که سلیمان خاطای بود که جن و انسو عرض کنم که و همه چی به فرمان اون و این که میگه که مرغ و ماهی عقل دانش او میخندند اشاره است و ای که مرغ و ماهی همه اصطلاح تحت اختیار سلیمان بودن و اون قصه عرض کنم که دو گرد و نیمت هم که همه لابد شنیدید به روز سلیمان گفت خدایا یه روز این همه به من حشمت دادی نعمت دادی چه دادی چه دادی یه روز اجازه بده که این محروب تو رو من روزی کنم خدا موافقت بعد سلیمان گفت جمع کنن سالها بیارن و ذخیره کنن درست کنن و هرچه مواد ده لازم برای این کار هست جمعآوری بکنم تا روزی که مثلا یه روز بلاخره این همه طرف خدا رو عذاب بده اتفاقاً اون روز یه ماهی سرش از آب گفت آقا من هم دوز این کسانی که شما قراره که چیزی به شما هستم یا نه گوشه نباشی البته کنش گفت گوشنم همه آدم ریختن هی hey, ریختن هی hey, گفت بده هی hey, ریختن هی hey, گفت بده hey, <تصفح> تا تمام اون زخیره تمام شد باز گفت بده گفتن تمام شد گفت ای بابا من روزی سه برد سه جور از خدا روزی میگرفتم این نیم جرعهش بود <تصفح> <تصفح> امروز رو باید گشته بمونن دو جور اون موند اینه که حالا میگن کسی که منو کارونتن دارن منو دورتن باقیه پیشاره به این ماجر و بله میگه در حشمت سلیمان هرکس که شک نمایت بر عقل و دانش او خندن مرغ ما بازر چه بر سر مهد کلاهی مرغان قاف دانه آیه نکان اولا مرغان قاف یعنی یا به, تر... به تعبیر عربیش انگاه انگاه هم که میگن انگاه مقرب مثل مغرب میریسند ولی مغرب میکنند مغرب یعنی هم کنهانه، گروب میتونند انگاه مغرب یعنی مرگی که کسی نبیده شد مرگیست مثل به مرگ اعتقاد عرب هر دو اینا خیالی اصلا البته بنابراین می‌تونن مثل هم باشن یا نوشن. یعنی که در عصب وجود ندارم اصلا. به هر حال، این که می‌گه مرغان قاف دانند، آین پادچاهی، برای اینکه که گفتن که سیمور جاشت از کوه قافه، و کوه قاف هم اونجوری که نشون دادن عبارت هست از کوه‌های بسیار بلند، بسیار دوشواره، قفغاز، کوه‌ستان‌های دربنده، با قلعباب و اینو رو، این رو می و, و جایگاه سیمور رو در کوه قاق اما اینکه باز کلا سرش میزاره، کلا نشان فادشایی بود. و مردم عادی کلا سرش رو نمیذاشته. یکی چیزی میستن درسته شد. توی داستان رستان و میگه چو رستن به شهر سمنگان رسید خبرزوب شیر فلیکان رسید پذیره شدندش بزرگان و شاه کسی تو به سر برنهادی کلا شاه کلا سرش میشه. بنابراین این که میگه که بازگاهگاهی کلا سرش میداره یعنی شاه مرهانه و در حقیقت تصور سی هم یه تصور مبالغه شده یا همون اقابه برای این که اقابهای بزرگ دیدن که گشادگی قصد بالشون دومتر، دومتر و نیمه و یه بره یا یه بچه آهو یا بچه انسان میتونه به راحتی بره برای عنوان تومه این تصور سی مرخ هم در حال اما مگان رو میدونید که تربیت میکردم برای شکار و هنوزم این اوافر هم شنیدم در دوره جمهوری اسلامی که از تجارت‌های پرسود دوستان سوپ داشت بود است که بچه شاهین و باز و این نوع مرغان شکاری رو میورددم تربیت میکردمورددم می به شیخ به با قیمت های خیلی گذااف چندین هزار دلار ده هزار دلار میفر و داستان واردین است که مرغان شکاری ام مثل مرگان عادی از هیکل خیلی خیلی گونده دارن اوقا پنجه و مثلا تا خیلی خیلی کوچیک باشه گرمی یه از کبوتر چفته از پونجش که چیزش هم شکارش هم, هم گونده حافظ میگه به تاج خود خودم از رحمه برد که باز سفید چو باشه در په هر سید مختصر و این مروان همون بزرگ بزرگ که اقافظ هم در هست کچکتر کچکتر کچکتر تا تا غیبی. و در میون اینا یه مشتی از مروان هستن که باز بهشون میگن و شاهین میگن و چرقه اوکی یا چرخ بهشون میگن و سونگور بهشون میگن اسماء دیگه هم داره و معمولاً اون کوچیک تراشون اونایی که به اندازه هیکل مثلا مرد خانگی هستن که شاهین و باز اینا بهشون میگن اینا رو تربیت میکنن و بعد اونش میگیرن با آدم البته پنجه هاشون خیلی قویی علیوی دست آدم لباس باشه تمام رو خونهالود میکنه فرو می رو میره که دوشتیم یه پوشش آهنی روی دستشون میذارن و این باز روی اون میشینه بعد موقعی که میخوان پروازش میدن و معمولا این میره وقتی میاد یه جب روی کپ که چیزی سراغ میکنه و این می روی اگه مثلا صد تا کهپگاه تمام از ترسشون دارن می‌چسمون به سنگ. تکون نمی‌خورد. اونم بالا می‌شینه تا وقتی که آقا، شیخ مثلا، یا شاه یا هر کسی که هست، بره دونه دونه این کهپگاه رو میگیره و بالاشون بشکنه و برنیسه توی بونی وارد برد بگیر. با این‌ها نفسشون داره. از ترس اینکه که ما باز از دوره باز می‌شه. کبوتر هم تا وقتی میزنه به یک کبوتر این کبوتر تمام پراش میریزه در آن روهای نبیدونم از ترس جسم می‌شونه یک پرش گوش رو اینا برای که این تربیت بشن ای دوره دوشباری اولا بچه باید بشن زیاده می‌شونم باید کشها اینا رو می‌دوزن برای اینکه بیرون رو نبیدن بعد اینا در دشت که که اصلا اصلا صدایی نیست زندگی کردم سر صدا اصلا نده. اینا رو شروع میکن به سر صدا کرده. تبل میزنم اصلید اوم می سر صدا میکنن دا می فریاد فریات میزنن مثل به هم می خوبوبن و اصلا سر صدا ها و این حربون می تپ اوه ای نحتی چیز میکنن چیزی میکنه و بعد بالافر کم ت عادت میکنم اینا که نه این سر صدا ها، به حیوان نداشت. بعد کم کم عادتش میدن. هم وقت که هنوز چیزه که مثلا یک کبوتری رو که احیان پرشم چیدن اونا به جلو این و این میپرینه میگیره و وقتی میگیره میاره پوراً سرشو میشکنن مغزشو میدن به حیوان بکره. یعنی پوراً دستموز بشید. و این کم کم عادت میکنه که بره شکار بگیره و برداره بیاره و بعد که عادت به سر رو کرد چشماشو رو باز می‌کنه ولی یک کلاهک فولادی هست که این رو موقعی موقع که میخوان شکار این نزن رو سر این، به این جایی رو ندارن وقتی میرسن به اون جایی که باید پروازش بدن این کلاحا هستش بر میدنن، این پرواز دارن. قاناچه این میگن میره اون بالشه این که میگه بازرچه گاغداهی فرسرنهاد کلاهی مرغان قاطنان آین پادشاهی این گاهگاه فر گاه، گاه، بر سر نوشتن قصهش اینه که هستن. و یک دسته کتاب ها هست به نام بازنامه یا بازداری یا حتی به عربی فز دره که از همون بازداری گرفته شده یا بریزره باز از همون گرفته شده و بازیار کسی که معمول نگهداری و باز ترگیت چینا هست و کاراشون و این به هر حال اشاره به اون وز است که اون روز خیلی رایش بوده و همه مردم میفهمیدن که این که کلا باز سرش میذاره و گاهی رو چی؟ یه تبلک کچلوی هم داشتن که وقتی که میخواستن باز برگرده این رو به صدا رو مثل این تبلک که بچه ها دارن میزنن اونجوری بوده تبلو اون و تبلکو میزدن و این باز بر میگشتی مولانا اونگه که بشنیدم از هواوی تو هواوی تبل باز باز آمدن که سائل این طبل بازم این تیری که آسمانش از فیض خود دهد آب تنها جهان بگید بیمنت سباب باز اشاره به فرده ایزد تیری که فیض آسمانی آبش بده یعنی صاحبش برگودار از فرده ایزد کلکتو خوش نویسد در شعن یار و عریار تعویز جانفضایی افسون عمر کاهی این قلب توست در شعن یار تعویز منی است، داهایی که بازو میدندن اینا تعویز جانفضایی یعنی دهای طول عمر رو در شعن یار مینویسه افسون عمر کاهی دهای کم کردن عمر در شعن عریار می. کل که تو خوش نویسد در شعن یار و اغیار تحویز جانفضایی افسون امکاهی اگه این بخون تحویز جانفضایی افسون امکاهی البته برد ای انصور تو مخلوق از کبریا و عزت به دولت تو ایمن از سطم تباهی پتار بده پادشاه های توضیح هم نداره گر پرتویز تیغت بر کان و معدن افتد یاغوت سردو را بخشند رنگ کافی یعنی میترسند عرض کرده همستی که چند بار کتمند شما ها که آفتاب و تابش آفتاب معتقد بودن خودما که در عمل و مدنیات و پروردن گوهر ها تحصیل حافظ میگه که طالب لعل و گوهر و وگرنه خورشید همچنان در عمل معدن و کان است که بود میگه خورشید مثل سبب مشغول پروردن کانه منطقه کسی نیست که این زحمت به خودش بده بره این لعل گوهر رو بیرون بیاره یا تو اون یکی چیز میگه که در غذری که شجریان هم خونده در بیداد همالیون میگه لعلی از تان مروبت بر نیامد سال هاست تابش خورشید و سعی باد و باران راچه شد این اینجا میگه که پرتا اتیقه تو اگه بیفته بگی مدن که سرخ بوده زر به حقیقت این است که یاقوت اکسید آلومینیوم یعنی نوع خاک رس آلو دو و 5 تو آلومینیوم 5 شد. و تمام این خاک رس دنیا فرمولش و خاک چینی که سفید کاملا تمام اینا همین فرمول رو این رنگی بودن انواع خاکروس هم به علت اکسید فلزات دیگره خاکروس هایی که معمولا متمایل به این هم اکسید آهن داره برزن اگر نداشته باشن فقط اکسید آلومینیون باشه سفیده یعنی همون خاکیس که باش چینی و سن و یاغوت صورت متبلور شده یعنی کریستالایزده این ماده هستم گاهی اتفاق میفته که در اثر حرارتهای بسیار شدید و جریانات الکتریکی و مثلا زدن یه ساقه شدید و همثال اینا یه قسمتی از این خاکهای رست متولده میشه به صورت برو در میاد و همین دلیل معدن یاغوت اینا توی خاک رست و بیشترش هم در سریلانکا بوده اونجای که معروف بوده خاک رست رو میکاون یه تیاغوت بشتره بعد، اگر اتفاقاً این در اون معدن کالند، یعنی خواهی که سفید باشه، یاغودش سفید بسه رنگ و اگر در جایی باشه که خاک زرد رنگه، یاغود زرد میشه، بهش میگن جاده جاده اسم یاغود زرد، و اینجا همینو میگه، میگه اگر آفز خیلی بحر برداری که قشنگی هزه می کنیم میگه اگه پرتوه تیده تو به کانو مردن بیوکته یاغوت سورف رنگ روز در یکی یکی یکی یاغوت سورف رو را بخشن بعدی شاه بیت این نظره میگه عمریست پادشاه ها که از میتوییست جا شاهدش کیه؟ ایگه محتسب عمریز پاتره های با از یک تویز جان این عکز بنده دعویب و از محتسب گوا دانم دلت ببخشد بر عمر شب نشی شب نشی نان در حال من بپرسی از باد صورت دارم حال من که شب تا صورت شب نشینم اونجا یعنی که شب میداره بی تا صورت میگه میدونم که اگر از باد صورت بایی حال منو رو بپرسی دلت بر من رحمت میاره دلت بر من این نشان روافت خصوصی دوستانه خیلی خوب بوده که شاه شجاع با خواج داشته و اینطور میتونست باهاش حرف بزنه این دیگه میره توی چیز حافظ هرگز صوفی نبوده مخالف صوفی هم بوده و یکیش همین چیز ساقید آبی از چشمه خرابات تا خرگه ها بشویم از اوج به خانه قابلی ارج به معنی خوردینین و تکفر ایناست که من از کسی زاهد میشه یا درویش میشه فکر کنه به سرخاله خدا شد الان هم همینطور آقایونه صوفیه <سوفیات> ها فکران هر چیز خوب دنیا هست مال در آبیش هستن هر هست. که اونا هست هم که اهل شهر هم که همی طور اینا باقی مردم که جهنمی ها نسبت دارن گمشن اون که ریشتاراشه، اون که وایسده میشه شه اون که ندونم حقای دینیش رو نداده اون که نمازش، قاهل نمازه ام اصلا این گرفتاری رو دارم حال آقای هم که مهده آبی. آدم بی یار آدمی گناهکار این اوج بود نداری اوش بودی جایی که برق استیان بر آدم سفی زاد قرآن صریحا آمده که خدای من گناه کرده نه خداش من گصه گند استیان یعنی گناهکاری. کاری وقتی که آدم رو برگه استیان، آدم رو برگه استیان بهش بزنه ما می توانیم دردیه بیبناهی کنیم جایی که برق استیان بر آدم ستی زد ما را چگونه زیبه دردیه بیبناهی حافظ چو پادچاهت گهگاه می میبرد نام رنجشت وقت من ما بازا بوز بسه تیجیم حالا به خودش نهی بستت هم که پاترک گهگاه از ات نام میبره دیگه از وقت خودت گله نداشته باش و به عوض خواهی بیان فضل چهار خب، ساله هست خسته نباشین استاد واقعا خسته شدیم بسیار نه سوشیان چیزه. امام زمان زردشتی حالا نمیدونم که در افثانه های مرد سوشیان که راست و هم کمکی میکنه یا نه اونو من نمیدونم یه رساله برام داوود نوشته به همین سوشیانت موجود موجود ها و کتاب پنشسته فیز او رو باید نگاه کنی. من الان حاضر رو بزنیم سم حتما اینو به همه ارتباط شداره گناهکاری آدم، اون هیچ رابطه با به انجیل داره که چلین دایی هایی هایی هایی، آیا از انجیل گرده موجود که میگه وقتی که آدم گناهکاره نوشید؟ آدم، اول کش از همه اینا باید. و در تمام, تمام قصه های دینی اصلا این هست آدم جاش تو بهشم تمام اینا، یعنی تو راقه تو عدیان سامی برای که دینای چینی و جاپنین اصلا بهشت و جهنم اونا ندارن، اونا این سازمان دیگه ای دارن. ولی در ادیان سامی، یعنی دین یهود و دین مسیح و دین اسلام، گفتن آدم و هفوار جاشون هستن تو بهشت دارن. در اثر گناهکاری رو, رو نداختن بیرون. و این تو همه این کتاب منعکس شده، از جمعه